مصنوی معنوی مولوی برنامه پینجاه و ششم تهدید کردن فرعون موسی را علیه السلام گفت فرعونش چرا تو ای کلیم، خلق را کشتی و افگندی تو بیم. در حزیمت از تو افتادند، خلق، در حزیمت کشته شد مردم ز زلق. لاجرم مردم تو را دشمن گرفت، کین تو در سینه مرد و زن گرفت. خلق را می خاندی برعکس شد، از خلافت مردمان را نیست بود. من هم از شرت اگر پس می خزم، در مکافات تو دیگه می پزم. دل از این برکن که به فریبی مرا، یا پس پسروی گردد تو را. تو بدان غره مشوکش ساختی در دل خلقان هراس انداختی صد چنین آری و هم رسوا شوی خار گردی زهکه غوغا شوی تو سالوس بسیاران بودند عاقبت در مصر ما رسوا شدند جواب موسا فرعون را در تهدیدی که می کردش. گفت با امر حقم اشراک نیست گر بریزد خونم امرش باک نیست راضیم من شاکرم من ای حریف این طرف رسوا و پیش حق شریف پیش خلقان خار و زار و ریش خند پیش حق محبوب و مطلوب و پسند از سخن میگویمین ورنه خدا از سیاه رویان کند تو را عزتان اوست وان بندگانش زادم و ابلیس بر میخان نشانش شرح حق پایان ندارد همچو حق هین دهان بربند و برگردان ورق پاسخ فرعون موسی را علیه السلام گفت فرعونش ورق در حکم ماست دفتر و دیوان حکم این دم مراست مرمرا بخریدند اهل جهان از همه عاقلتری تو ای فلان موسیا خود را خریدی، هین براو، خیشتن کم بین، خود غره مشاو. جم آرم ساهران دهر را، تا که جهل تو نمایم شهر را. این نخواهد شد روزی و دو روز، مهلتم ده تا چهل روز تموز. جواب موسا را گفت موسا این مرا دستور نیست بندم امحال تو معمور نیست گر تو چیری و مر یار نیست بنده فرمانم بدانم کار نیست میزنم با تو بجد تازندم من چه کاره نصرتم من بندم می زنم تا در رسد حکم خدا او کند هر خسم از خسم جدا جواب فرعون موسی را و وحی آمدن موسا را علیه السلام گفت نی نی مهلت باید نهاد اشوها کم دی تو کم پیمای باد حق وحی کردش در زمان مهلتش دی متسه از ازان این چهل روزش بدی مهلت بتاو تا سگالت مکرها او ناو ناو تا بکوشد او که نا من خفتم تیز رو گو پیش ره بگرفتم هیلههاشان را همه بر هم زنم وان چه افزایند من برکم زنم آب را آرند و من آتش کنم نوش و خوش گیرند و من ناخش کنم مهر پیوندند و من ویران کنم آن که اندر وهم نارند آن کنم تو مترسو مهلتش دی دم دراز گو آر و او حیلت بساز مهلت دادن موسی علیه السلام فرعون را تا ساهران را جمع کند از مدائن گفت امر آمد برو محلت تو را، من جای خود شدم، رستی ز ما. او همی شد وجدها ان در عقب چون سگ سیاد دانا و محب. چون سگ سیاد جنبان کرد دم، سنگ را می کرد ریگ و زیر سم، سنگ و آهن را بدم در می کشید. خرد می آهن را پدید. در هوا میکرد خود بالای برج که هزیمت می از وی روم و گرج. کفک می انداخت چون اشتر زکام قطره بر هر که زد می شد جزام. جغجغ دندان او دل میشکست جان شیران سیه می شد زده است. چون به قوم خود رسید آن مجتبا، شدق او بگرفت، باز او شد اصا، تکیه بروی کرد و میگفت گفت ای عجب، پیش ما خورشید و پیش خسم شب، ای عجب چون می نبیند این سپاه، عالم پرآفتاب چاشتگاه، چشم باز و گوش باز و این زکا، خیرم در چشم بندی خدا، من از ایشان خیره ایشان هم زمن، از بهار خار ایشان من سمن پیششان بردم بس جام رهیق، سنگ شد آبش به پیش این فریق دسته گل بستم و بردم به پیش هر گل چون خار گشت و نوش نیش. آن نصیب جان بیخشان بوود چون که با پیدا کی شود. خفته بیدار باید پیش ما، تا به بیداری ببیند خوابها. دشمن این خواب خوش شد فکر خلق، تا نخصبت فکرتش بسته است حلق. حیرت باید که روبت فکر را، خورده حیرت فکر را و ذکر را. هر که کاملتر بود او در هنر، او بمانی پس به صورت پیشتر راجع راجعون گفت و رجو انسان بود که گله واگردد و خانه رود. چونکه واگردید گله از ورود پس فتت آن بز که پیشا هنگ بود. پیش افتت آن بز لنگ پسین از حکر رجع وجوه الابسین از گذافه فاکه شدند این قوم لنگ فخر را دادند و بخریدند ننگ پارشکسته می روند این قوم حج از هرج راه است پنهان تا فرج دل ز دانش ها بشستند این فریق زان که این دانش نداند آن طریق دانش باید که اصلش زان سر است زان که هر فرع به اصلش رهبر است هر پری بر عرض دریا کی پرد تا لدن علم لدنی می برد پس چرا علم بیاموزی به مرد کشبه باید سینه را زان پاک کرد پس مجو پیشی از این سر لنگ باش وقت باگشتن تو پیشا هنگ باش آخرون از سابقون باش ای ظریف بر شجر سابق بود میوه تعریف گرچه میوه آخر آید در وجود اول استو، تو زان که او مقصود بود چون ملایک گوی لا علم لنا تا بگیرد دست تو علم تنا. گر نباشی نامدارن در بلاد کم نی والله اعلم بل ابا اندران و ایران که آن معروف نیست، از برای حفظ گنجینه زریست. موضع معروف کهی بنهند گنج، زینقبل آمد فرج در زیر رنج. خاطر آورد بس شکال اینجا ولیک، بسکرد اشکال را استور نیک. هست عشقش آتش اشکال سوز، هر خیال را، برو نور روز هم از آن سو جو جوابی مرتزا که این سؤال آمد از آن سو مرترا گوشه بی گوشه دل شهره است تا به شرقی و لا غرب از مه است تو از این سو و از آن سو چو گدا ای که معنی چمی جویی صدا هم از آن سو جو که وقت درد تو می شوی در ذکر یا رب دو تو وقت درد و مرگ از آن سو می نهی، چون که دردت رفت چونی هجمی. وقت مهنت گشته ای الله گو، چون که مهنت رفت گوی راه کو. این از آن آمد که حق را بیگمان، هر که بشناسد بود دائم بران، وان که در اقل و گمان هستش حجاب گاه پوشیدست و گاه بدریده جایب. اقل جزوی گاه چیره گه نگون اقل کلی ایمن از ریب المنون. اقل بفروش و هنر حیرت بخر رو به خاری نی بخارا ای پسر ما چه خود را در سخن آغش دهیم که از حکایت ما حکایت گشته ایم. من عدم وفصانه گردم در هنین تا تقلب یابم اندر ساجدین. این حکایت نیست پیش مردکار وصف حال است و حضور یار غار. آن اساتیر اولین که گفت آق حرف قرآن را بود آثار نفاق. لا مکانه که درو نور خداست ماضی و مستقبل و حال از کجاست مازی و مستقبلش نسبت به توست هر دو یک چیزند پنداری که دوست یک تنی او را پدر ما را پسر بام زیر زید و امر آن زبر نسبت زیر و زبر شد کس سقف سوی خیش یک چیز است و بس نیست مثل آن مثال است این سخن قاصر از معنای نو حرف کهن فرستادن فرعون با مداین در طلب ساهران چونکه موسی موسا بازگشت و او بماند اهل رأی و مشورت را پیش خواند. آنچنان دیدند که از اطراف مصر جم آرد شاه شه و سراف مصر او بس مردم فرستاد آن زمان هر نواهی بحر جمع جادوان هر طرف که ساهر بود نامدار کرد پران سوی او ده پیک کار دو جوان بودند ساهر مشتهر سهر ایشان در دل مح مستمر شیر دوشیده زمه ز فاش آشکار در سفرها رفته بر خم سوار شکل کرباس نموده ماهتاب آن بپیموده فروشیده شتاب سیم برده مشتری آگاه شده دست از حسرت به بر رخها برزده صد هزاران همچنین در جادویی بوده منشی و نبوده چون روی چون بدیشان آمدان پیغام شاه که از شما شاه هست اکنون چارخا از پی آن که دو درویش آمدند بر شه و بر قصر او موکب زدند نیست با ایشان غیر یک عصا که همه گردد به امرش اجده شاه و لشکر جمله بیچاره شدند زیندوکس جمله جمعه به افغان آمدند چاره می باید اندر ساهری تا بود که زندو ساهر جان بری اندو ساهر را چو این پیغام داد ترس و مهر در دل هر دو فتاد ارق جنسیت چون گرفت سر به زانو برنهادند از شگفت چون دبیرستان صوفی زانو است حل مشکل را دو زانو جادو است خواندن آن دو ساهر پدر را از گور و پرسیدن از روان پدر حقیقت موسی علیه السلام را بعد از آن گفتند ای مادر بیا، گور بابا کو تو مارا ما را رهنما بردشان بر گور او به مودر را پس سروزه داشتند از بهر شاه. بعد از آن گفتند ای بابا ما شاه پیغامی فرستاد از وجا که دو مردو را به تنگ آوردند آب رویش پیش لشکر بردند. نیست با ایشان صلاح و لشکری جز عصا و در عصا شور و شره تو جهان راستان در رفته‌ای گرچه در صورت به خاک افته‌ای آن اگر سهر است ما را ده خبر ور خدایی باشد ای جان پدر هم خبر ده تا که ما سجده کنیم خیشتن بر کیمیای برزنیم ناامیدانیم و امید رسید راندگان ما کرم ما را کشید جواب گفتن ساهر مرده با فرزندان خود بانگ زد کی جان و فرزندان من هست پیدا گفتن این را مرتحن ش و مطلق گفتنم دستور نیست. لیک راز از پیش چشمم دور نیست. لیک بنمایم نشانه با شما تا شود پیدا شما را این خفا. نور چشمانم چو آنجا گهروید از مقام خفتنش آگه شوید. آن زمان که خفته باشد آن حکیم آن را قصد کن بگذار بیم گر به و توانی ساهر است چاره ساحر برای تو حاضر است ور نتانی هان, هان آن ایزدی است او رسول زلجلال و محتدی است جهان فرعان گیرد شرق و غرب سرنگون آید خدا را گاه حرب این نشان راست دادم جان باب برنویس الله عالم به ثواب جان بابا چون به خسبد ساهره سهر و مکرش را نباشد رهبری، چونکه چون که چوپان خفت گرگ ایمن شود چونکه که خفت آن جهده او ساکن شود لیک حیوانه که چوپانش خداست گرگ را آنجا امید و ره گجاست جادویی که حق کند حق است و راست را جادوی خواندن مران حق را خطاست جان بابا این نشان قاطع است گربه میرد نیز حقش رافه است تشبیه کردن قرآن مجید را به عصای موسی و وفات مصطفی علیه السلام را نمودن به خواب موسی. مصطفی را وعده کرد طاف حق گر بمیری تو نمیرد این سبق. من کتاب و معجزت را رافعم بیش کم کن را ز قرآن مانم. من تو را اندر دو عالم، حافظم تا انان را از حدیثت رافظم کس نتابد بیش و کم کردن درو تو به از من حافظ دیگر مجو رونقت را روز روز افزون کنم نام تو بر زر و بر نقره زنم منبر و مهراب سازم بهر تو در محبت قهر من شد قهر تو نام تو از ترس پنهان می گوند. چون نماز آرند پنهان می شوند. از حراس و ترس کفار لعین دیند پنهان می شود زیر زمین من پر کنم آفاق را کورگردانم دو چشم آق را چاکرانت شهرها گیرند و جا دین تو گیرد زماهی تا به ما تا قیامت باقیش داریم ما، تو مترس از نسخ دین، ای مصطفی. ای رسول ما، تو جادو نیستی، صادقی هم خرقه موسی استی، هست قرآن تو را همچون اصا، کافرها را در چون اجده تو اگر در زیر خاکی خوفتایی ای چون اصایش دان تو آنچه گفته قاصدان را بر اسایت دست نه تو بخواسب ای شه مبارک خفتنی تن بخفته نور تو بر آسمان بهر پیکار تو زه کرده کمان فلسفی و آنچه پوزش میکند توس نورت تیردوزش می کند. آنچنان کرد و از آن افزون که گفت. او بخفت و بخت و اقبالش نخفت. جان بابا چون که ساهر خواب شد، کار او بیرونق و بیتاب شد. هر دو بوسیدند گورش را و رفت تا به مصر از بهره این کار زف. چون به مصر از بحر آن کار آمدند، طالب موسی و خانه او شدند. اتفاق افتاد که روز ورود موسی در زیر نخل خفته بود. پس نشان دادندشان مردم بدو که برو آن سوی نخلستان بجو. چون بی آمد دید و در خرمابنان خفته ای که بود، بیدار جهان بهره نازش بسته او دو چشم سر ارش و فرشش جمله در زیر نظر ای بسا بیدار چشم خفته دل خود چه بیند دید اهل آب و گل آنکه دل بیدار دارد چشم سر گر به خسبت برگشاید سد بسر گر تو اهل دل نیی بیدار باش طالب دل باش و در پیکار باش ور دلت بیدار شد می خش خوش نیست غایب ناظرت از هفت و شش گفت پیغمبر که خسبت چشم من لیک کی خسبت دلم اندر وسن شاه بیدار است حارس خفتهگیر جان فدای خفتگان دل بسیر. وصف بیداری دل ای معنوی در نگنجد در هزاران مصنوی چون بدیدندش که خفتست و دراز بحر دزدی عصا کردند ساز ساهران قصد عصا کردند زود کس پسش باید شدن وانگه ربو انده که چون پیشتر کردند ساز، اندر آمد آن اصا در احتزاز. آن چونان بر خود بلرزید آن اصا، کاندو و بر جا گشتند از وجا. بعد از آن شد اجده و حمله کرد، هر دوان بگریختند و روی زرد. رو در افتادن گرفتند از نهیب، غلط غلطان، منهزم در هر نشیب. پس یقینشان شد که هست از آسمان زانکه می دیدند حد ساهران. بعد از آن اطلاق و تبشان شد پدید. کارشان تا نز و جان کندن رسید. پس فرستادند مردی در زمان سوی موسا از برای عذر آن که امتحان کردیم ما را کای رسد امتحان تو اگر نبود حسد مجرم شاهیم ما را عفو خواه ای تو خواس خاص درگاه اله عفو کرد و در زمان نیکو شدند پیش موسا بر زمین سر می زدند. گفت موسا عفو کردم ای کرام گشت بر تن و جانتان حرام من شما را خود ندیدم ای دو یار سازید خود را زیت زار همچنان بیگانه شکل و آشنا در نبردایید بحر پادشاه پس زمین را بوسه دادند و شدند انتظار وقت و فرصت می بودند